تازه داشتم با دنیای جدیدم معنوس می شدم و از تلاتون و سردرگریبانی روحی نجات پیدا می کردم. برخلاف من که همیشه برای یاد گرفتن بیمیل بودم و احساس می کردم وقت برای یادگیری همیشه هست، نرگس و آزیتا انگار دنیا دارد به آخر می رسد همیشه برای یاد گرفتن چیزهای تازه عجله داشتند و حریص بودند. مثل این بود که از زوراز با مخص و توانایی شان لذت می بردند. تمایل و شروع شوق و نشات آنها روی من هم اثر میگذاشت و مرا به جلو می راند. یک موقع به خودم آمدم که دیدم از سر در از کارهای مختلف احساس لذت می کنم و مزه دانستن و لذت یادگیری و مهارت را می چشیدم. لذت شیرین یاد گرفتن و فهمیدن از روی خاست و رقبت، نه اجبار و کراحت. مسلس دوستی ما به قول نرگست ست و بیکار مرا متحول میکرد و زندگی دوباره به من میبخشید که دوباره سرنوشت و روزگار سر ناسازگاری گذاشت و سومین ضربه تلخ و سخت را بر سرم فرود آورد. آخرین امتحانهای سال دوم بود. دیر وقت حدود نیمه شب بود که با صدای فریادهای وحشت زده مادر که علی و امیر را صدا میزد از جا پریدم و حراسان خودم را به آنها رساندم. مادر پریشان و گریان بر سر و صورتش میزد و آقا جون همونطور که به پشت خوابیده بود به نظر میآمد آمد چهره از تنگ نفس کبود شده است و خیر خیر می کند. امیر سعی داشت آقا جون را از جا بلند کند و در این حال با صدای بلند مرتب صدایش میکرد. بی اختیار امیر را کنار زدم و دهانم را بر دهان آقا جون گذاشتم و با تمام توان در آن دمیدم. صدای خرخری که در هنجرش پیچید امیدوارم کرد. بی خبر از اینکه که صدای نفسهای خودم را می شنوم باز با تمام قوا در دهانش دمیدم. مادر زار می زد و امیر سعی داشت با فشارهایی که به قفسه سینه آقاجون آقا جون می آورد کمک کند ولی بی فایده بود. امیر انگار زودتر از من به وضعیت پی برد و بیهودگی کارمان را فهمید. چون آقاجون را بغل کرد و با کمک علی سوار ماشین کرد. به محض اینکه به بیمارستان رسیدیم آقاجون را روی برانکار خواباندند و دکتر اورژانس دستش را کاملا بالا برد و محکم روی قلب آقاجون کوبید. روی قلب مهربان و پر از عطوفت آقاجون. قلبم تیر کشید و درد گرد. دستگاه های شکر را به سینه آقاجون وصل کردند و جلوی چشم های وحشت زده و حراسان ما به بدنش شک دادند یک بار دو بار سه بار فایده نداشت نه غیر ممکن بود پدر من آقاجون قوی و قدرتمند من دیگر نفس نداشت مظلوم و معصوم و استوار همانطور که زندگی کرده بود همانطور هم بی‌صدا خاموش شده بود این آقاجون من بود عزیزترین عزیزان من آنکه زندگیم را مدیونش بودم و همه آرامش و آسایش و را زیر آن دستگاه ها و بی‌نفس آقاجون سکته کرده بود جلوی چشم‌هایم سیاه شد تصویرها دور و نستیک و گنگ انگار جان ذره ذره تنم بیرون میرفت زانوهایم خم شد. بیهوش شدم. با آنکه ضربهی مرگ خانم جون را چشیده بودم ولی با همه دردناکی قابل موقع سبا درد از دست دادن آقا چون نبود. دیگر هیچ چیز به یاد ندارم. صدای فریاد و شیونها. چشمهای اشکبار و مظلوم مادرم و صورتهای غرق عشق امیر و علی و دیگران تصویرهایی مبهم بود که از ته چاهی تاریک میدیدم و این بار دیگر آقاچون را ندیدم از عزیزترین موجود زندگیم بی حافظی جدا شدم درد فوق طاقتم بود تازیانه های رنجی عظیم وجودم را در خودش پیچاند و غرق کرد باور نداشتم که یک دنیا مهر و عاطفه مظهر هستی و وجود من امیدم. پشتوانه و دلخوشی و مایه سرف روزی و عزتم مثل شمعی بی خاموش شده باشد. هر بار به حوش می آمدم، دلم میخواست چنگ بی و قلبم را از سینه بیرون میکشم. دیگر برای چه می به عشق و امید چه کسی؟ در گذشت ناگهانی و غیر قابل باور آقا جون برای من با آن روح زخم و خورده و حساس و مریض زربه ای بود که برای از پا انداختن دوباره هم کافی که هیچ زیاد هم بود. از مراسم روزهای اول چیزی به خاطر ندارم. در بیهوشی و بیهسی مثل جنازهای بین مرگ و زندگی معلق بودم. با سابقه بیماری بیماریه گذشتم، دکترها تشخیص داده بودند همان بیهوشی برایم بهتر است. این بود که من جسدی شده بودم با سرومی دردست که با تزریق آرام بخش گوشه افتاده بود. چهره آرام و غمگین آقا جون بعد از جدایم از محمد از جلوی چشمهایم کنار نمی رفت. چیزی مثل سوهان روح هم را میتراشید. اینکه چقدر باعث رنج آقا جون مهربانم شده بودم و او صبورانه تحمل کرده بود و آخر هم با داقی بردل مثل پرنده معصوم و تنها از پیش ما رفته بود، عذابم می داد. چه آرزوها و حرفهای ناگفتهی که بین من و این عزیزترین عزیزانم ناگفته ماند. ندانست زمان را از دست دادیم. بدون اینکه بفهمیم آنچه چه دارد فنا شود و از بین می رود. دیگر هیچ وقت باز نمیگردد. آقا جون رفته بود. بدون اینکه حتی توانسته باشم از او به خاطر همه آن آنچه به من داده بود تشکر کنم. زندگیم و همه آن آنچه داشتم از او بود که حالا دیگر نبود رفته بود در حالی که نگران بود. نگران بچههایش که یکی از آنها من ناخلف بودم که از همه بیشتر باعث عذابش شده بودم. توی همان روزهای سیاه و تلخ عذا و عذاب و زجر بود که یک روز صدای پچپچ پچ مانند و ضعیف به بگوشم خورد. حتی قدرت اینکه سرم را برگردانم یا چشمهایم را باز کنم نداشتم. میشنیدم و در غرقاب تلخ عذاب قوته میخوردم خاله گریه کنن برای کس یا کسانی که من نمیدانستم میگفت خدا بیا یه پارچه چه جواهر بود حاضر بود خار به چشمش بره به پای زن و بچش نره خدا شاهده من از چشمم بدی دیدم از حاجب بز بدی ندیدم هرچی باشه پسر اون مادر بود شیر پاک خورده بود الهی نمیرم برای ملیحه من که خواهرشم جگرم خونه خدا به فریاد دل اون برسه بعد در حالی که صدایش زعیفتر میشد ادامه داد قصه یه این طورش کرد الا چیزش نبود مثل شاخش امشاد بود یه آخ که ازش نشنیده بود بلکه از بس خوصه این دختر رو خورد دقیق کرد آخه هقه هق کنان ساکت شد و من صدای نرگس را که سعی داشت خاله را آرام کند شناختم ای خدا چرا بعضی وقتها دنیای به این بزرگی برای آدم چنان تنگ می شود که جز مرگ نمی‌تواند آرزویی بکند من آجز و درمانده حتی دیگر اشک هم نداشتم. مرده‌ای بودم که تنها نفس مانع دفن کردنش بود. مقصم میجوشید و داغ میشد و همراه قلبم آتش میگرفت. اما چه سود؟ اعصابم مثل آبی که به نقطه ی جوش میرسد و بی بی‌صدا میشود به جوش آمد و دیگر از صدا افتادم. نشیوان، نه نفقان نه و زاری. نه تا اشکی که این مصیبت را برایم سبق کند این بار دیگر چشمهایم هم با من یار نبود روزها میگذشت و خانه ما غرق ماتم و ازا در سکوتی تلخ سیاه پوش بود در تمام آن روزهای شوم هر بار چشم باز کردم مریم و نرگس و گهگاه آزیتا را می‌دیدم و با دردمندی باز چشمهایم را نبروی آنها به روی دنیا میبستم. نمیخواستم چیزی ببینم. هیچ چیز و هیچ کس. اما زندگی معطل در ماندگی های ما نیست. میگذرد. و در گذر روزها بزرگترین مصیبتها از تو دور میشوند و متعلق به گذشته تا هستی و نفس داری مجبوری دوباره به زندگی برگردی. ببینی و بفهمی و تحمل کنی. درد از بین می رود از عظمت مصیبت و فاجعه کم می شود؟ نه درد هست مصیبت هست ولی در درون تو با تو و کنار تو می میآید و تو به آن عادت می کنی درد جزء لایم فکه زندگی است فرار از آن فرار از زندگیست که امکان ندارد چون شد که درد و رنج در دل و جانم نشست و حالا که اشک نبود تا آرامم کند آدمی دیگر شدم همیشه اقده دل از دو راه خالی می و در مواقع خشم و غم خود را نشان می دهد. یا اشک می یا فریاد از وقتی اشک چشمهایم خشک شد بغز گلویم تبدیل به فریاد شد دیگر به جای آن مهناز نازک دل و ظریف که لب برمی و بغز می‌کرد و اشک می‌ریخت، محناز مهناز جوشی و عصبی نشسته بود. وقتی قصه یا خشم دلم را می و بغز گلویم را صدایم به فریاد بلند میشد و پرخاش. وقتی دیگر نشانه ای بود که تک هم باشد نه سینهی که صورتم را در آن پنهان کنم و نه دستی که به حمایت در آغوشم بگیرد، عشق چه معنا داشت؟ صدایم از سر بیپناهی بلند می شد و فریادم اعتراضی بود به چشمهایم برای گرگ نکردن و پناه نخواستن، برای پنهان کردن ضعفی که دیگر برملا شدنش آرامش در پینه داشت. فقط رنج از دست دادن حامی و تکیه‌گاه‌هایی را که روزی دلم به آنها قرص بود، براخم میکشید. آقا جون و محمد تکیه‌گاهی بودند که دیگر نداشتم. و حالا تازه می‌فهمیدم تنها وقت‌هایی که ضعف مایه آرامش است، وقتی است که باعث پناه بردن تو به آغوشی قوی و مطمئن باشد که در پناهت میگیرد و حمایتت می‌کند. ولی دیگر زعف برای من مایه آرامش نبود وقتی خرد و مریض از جا بلند شدم که نیم ترم عقب افتاده بودم و در تمام آن روزها مریم و نرگس که طی این مدت با هم رابطه سمیمانه پیدا کرده بودند به نوبت پیشم می ماندند. تا تنها نباشم وقتی حالم بهتر شد به اصرار مریم بیشتر من به خانه آنها می رفتم و به دو دلیل با کمال میل اصرارش را قبول می کردم یکی اینکه از خانه خودمان دور باشم و دیگر اینکه دوست داشتم به خانه و محله قبلی نزدیک باشم دلم برای خانه و کوچه من پر می کشید و آرزویم بود بروم و از نزدیک دوباره آنجا را ببینم ته دلم همیشه تصور می کردم اگر جرأت این کار را پیدا کنم چقدر خوب می شود و شاید بتوانم خبری از محمد بگیرم <تصفيق> ولی گجورت و جسارت رفتن آن روزها مریم و اکرم خانم بی اندازه به من محبت می کردند و من توی آن خانه کوچک چقدر احساس آرامش می کردم. یکی از همان روزها بود که با تردید دل به دریا زدم و گفتم چقدر دلم می خواد برم خونمون از نزدیک ببینم برخلاف انتظارم اکرم خانم و مریم خیلی راحت گفتند. خب بیا بریم. از خون سردیشان جا خوردم و با شک پرسیدم بریم. اکرم خانم گفت. آره مادر، پاشو، الان منم خوام برم دکمه بخرم، پاشو با هم بریم. از حیرت دهانم باز مانده بود. گفتم، آخه اونجا ساکت شدم. اکرم خانوم با لبخندی محو گفت عیبی نداره دیگه خونه اونا اونجا نیست آه از نهادم بلند شد آنجا نیستند رفتند کی؟ در حالی که هیچ کدام اسم آنها رو به زبان نمی و با اشاره و غیر مستقیم صحبت می کردیم اما نتوانستم جلوی خودم رو بگیرم پرسیدم از اینجا رفتند کی خیلی وقته چطور؟ آج که میگفت گفت هیچ این خونه رو نمیفروشه؟ ای هی بابا تا حالا کی تونسته هر جور که دلش می زندگی کنه که آج بتونه بعد از اون قضیه محترم خانوم دیگه اینجا بند نشد بچهاش که هر کدوم رفته بودن یه طرف واسه دو نفر آدم هم خب اینجا خیلی بزرگ بود یه سال بعد از رفتن پسرشون اسم محمد را نمی آورد. هم از اینجا رفتند. دوست داشتم بپرسم کجا رفتند. اما رویم نمی شد. به سرنوشته تلخی که هر کدام من پیدا کرده بودیم حتی حاج آقا و محترم خانم که بلاخره مجبور شده بودند از خانه که آنقدر دوست داشتند دور بشوند فکر می کردم که اکرم خانم گفت خب اگه میای پاشو دیگه؟ اگه نمیایم که من برم. و من رفتم، بعد از چهار سال چه حالی داشتم، زانوهایم می و ضربان قلبم چند برابر شده بود، وقتی سر کوچه من رسیدیم نفسم دیگر به شماره افتاده بود، فکر میکردم چندین سال اینجا راه رفته آمده آقا جون بوده، چه شبها که از روی این کاشیها خسته برگشت و صبحها با امید رد شده و گذشته و رفته، خودم را به یاد می آوردم و زمانی که برای اولین بار همراه مادرم از این کوچه گذشته و به مدرسه رفته بودم. چقدر ظهرها که از مدرسه برمیگشتم وقتی دیگر راهی تا خانه نمانده بود با سوق و شوق از لابلای این درخت های تناور دویده بودم. روز عقدم به یادم می آمد و اوقاتی که همراه محمد توی این کوچه رفت و آمد کرده بودم. روزی که خانم جون را بر سر دست از همین کوچه برده بودند و آنقدر تصاویر سری از جلوی چشمهایم رد میشد که جلوی پایم را نمی دیدم. میلرزید می و مثل کسی که از سرما بلرزد بدنم را رعشه بی گرفته بود. تا وسط کوچه رفتم. نتوانستم بیشتر برفت. لرزان در حالی که با حسرت به در خانه و خانه محمد نگاه می کردم، ایستادم. افسوسی کشند وجودم را له می کرد. کاش هنوز خانه من آنجا بود و پشت آن در خانم جون و آقا جون نفس می کشیدند. کاش هنوز زری توی خانهشان بود و محمد هنوز برایم محمد آقا بود و این بار اگر از سر قضیه آغاز می شد من ارزش همه چیز را می دانستم. و با چنگ و دندان حفظش میکردم وای که اگر هنوز پشت آن درها اسیزهای من بودند اگر زمان به عقب برمیگشت و من باز آقاچون را داشتم و محمد را طاقتم تمام شد رو برگرداندم و در حالی که در دلم خودم را لعن و نفرین می کردم بی اختیار اندیشم به زبان روان شد و جویده جویده گفتم خدا لعنتت کنه منظورم به خودم بود خودم که ولی صدای اکرم خانم که به اشتباه فکر کرده بود من محمد را نفرین می کنم دست با چه مرا از عالم برزخی که تویش گیر افتاده بودم بیرون کشید مادر نفرین نکن اونم جوون مردمه گیج و حیران گفتم نه من اونو باز حرفم را قدع کرد و گفت میدونم میدونم دلت میسوزه ولی مادر من اینو فهمیدم همیشه هم به همه میگم دلتون که میسوزه دعا کنین نفرین نکنین که شر نفرین اول از همه یقه خود آدم و میگیره بالاخره هم اکرم خانوم نگذاشت توضیح بدهم. باور کرده و مطمئن بود که منظورم محمد بوده و این ای شد که برای عبرت من داستان زندگیشان را بگوید. داستان زندگی نزدیکترین دوستم را که من فقط به همین اکتفا کرده بودم که پدرش چند سال پیش فوت کرده و مادرش سرپرستشان بوده. آه که حالم از خودم به هم میخورد. چرا توی این دنیا غیر از خودم و دنیای خودم هیچ کس حتی نزدیک ترین دوستم برایم مهم نبود اکرم خانم با مظلومیت برایم تعریف میکرد و سختی دنیا میگفت و اینکه جز سبوری راهی برای تحمل نیست و لا حرفهایش هر از گاهی صحبت را به محمد میکشید تا به خیال خودش من را دلداری داده باشد خبر نداشت چه آتشی به دلم میزند وقتی که میگوید حالا بازم تو زود فهمیدی، هنوز بچه ای سنی نداری. تا اول راهی، پدرت هم که خدا رحمتش کنه تا وقتی بود، خودش مثل کوه پشتت بود. حالا هم که رفته، نام نیکش برات مونده که یه دنیاست. مادر، بادر، بی خودی خود خوری نکن، قصه نخور، منو میبینی؟ پاسوز همین قصه خوردنای بیخودیم شدم که الان مثل پیر زنای هفتاد ساله صاحب هزار درد و مرض شدم. کار خوبیم نکردم. یواش یواش از گذشته هایش می گفت و نصیحتم می کرد. او هم دنیا را با عینک تجربه های خودش می و می و قضاوت می کرد. می گفت که پانزده سالگی ازدواج کرده و همراه شوهرش که خیشاوندشان هم بوده از یزد به تهران آمده. آقا یحیی که کمک راننده تریلی بوده چند سال قبل از ازدواج در تهران زندگی می کرده. بعد که با اکرم خانم ازدواج می کند چقدر تلاش می کند تا اکرم خانم راحت باشد. از زندگی خوبشان می گفت و ای که به شوهرش داشته و اینکه خدا خیلی زود محتاب را با آنها میدهد. و پشت سرش مریم را تعریف می کرد که اونقدر دلم به یحیی و بچه خوش بود که خدا شاهده سراغ خونواده هم نمی گرفتم. تا بچه چام کوچیک بودن که شب و روزم وقت اونا بود به خاطر تنها نموندن یحیی حتی واسه سزای هم حاضر نشدم برم یست می گفتم یهیه راننده بیابونه وقتی میاد باید خونش گرم باشه و چراغ خونش روشن. کم کم خدا بهمون به نظر کرد و وضعمون بهتر شد و یا خودش رانندگی تریلی شد. بچه‌هام که جون گرفتن منم خیاطی و شروع کردم که هم سرم گرم باشه و هم بشم کمک خرج. اتفاقا کارم زود هم رونق گرفت. پولش و خدا شاهده دریق از یک جفت جوراب که برای خودم بخرم. همه رو جمع می کردم برای روز مبادا. تا بالاخره هفت سال طول کشید. پولامون روی هم گذاشتیم و این خونه رو خریدیم. آقا یحیی خونه رو به نام من کرد و تازه بازم هم گفت اکرم یعنی یه روز میشه من محبت های تو رو جبران کنم. ولی مادر انگار شیطون این حرف و شنید و سود زود اون روز رسوند. دو سه سال از خونه دار شدنمون گذاشته بود که کم کم یهیه حفظ شد. اول هفته سه شب، بعد دو شب می اومد و بعد هفته یه شب و یواش یواش طور شد که ماهی دو دفعه هم به زور می اومد. اونم چه اومدنی؟ مثل دشمن می اومد و به یه بهونه مرافع را میندخت و می رفت. آخر سر وقتی پیجو شدم که ببینم قضیه چیه، فهمیدم سرم هوو آورده. اونم فکر می کی؟ یه زن بیوه با سه تا بچه که خدا گواهه نه از من خوشگلتر بود نه جوونتر که اقلن بگم از من سر بوده دلشو برده وای که از روزی که فهمیدم قضیه چیه انگار ما رو مور توی قلبم ریختن آخه مگه همش چند سالم بود هنوز سی سالمم نشده بود یه سال خوراکم شده بود اشکو آه آقای احیام که نمورده ماتم ما رو گرفته بود و پیداش نبود خدا می دونه برای زن راحت تو تحمل هفو. منم که دیگه داشتم دیوونه میشدم سر ناسازگاری گذاشتم که یا من و بچه هام یا اون میدونه چی گفت؟ صاف و ساده گفت اون منم دلم سوخت بد جورم دلم سوخت خدا نکنه آدم از ته دل آه بکشه و دلش بسوزه. دلم به جوونیم و سختیایی که کشیدم به قربتی که تحمل کردم و دم نزدم به خوشیایی که به خاطر اون به خودم حروم کردم به نخوردن و نپوشیدن و نخواستنام که زندگیمون رونق بگیره سوخت و از ده دل آه کشیدم و یک کلمه فقط یک کلمه گفتم ایشالا همونطور که جیگر من و این دوتا بچه رو ناهق خون کردی خدا جیگرتو خون کنه اشک از چشم اکرم خانوم چکید و ادامه داد رفت و یه ما نشده بود که برام خبر آوردن توی راه تبریز تصادف کرده گریه شدت گرفت. معلوم بود که بعد از سالها شوهرش را بخشیده و برای آن آقای احیه باوفا که میشناخته اشک عشق می ریزد بدیها را فراموش کرده بود و مثل همه دلهای کریم و عاشق که همیشه در نهایت می بخشند چون از خودشان هم رنج می و عصاب میکشند. گناه او را بخشیده بود. کمی که آرام گرفت ادامه داد. هیچی مادر. بایگه نفرین جیگر خودم را دوباره خون کردم. آقای یحیی اونقدر تکه تکه شده بود که حتی نشد قصلش بدن. رفت و من موندم و این تو تا بچه که هنوزم که هنوزه دارم میسوزم و میسازم. خلاص خلیصه مهنز جون. نه خود خوری کن نه نفرین. چون زبونم لال مادر هر دوش آخر یقه خود آدم میگیره. برو خدا رو کن که زندگی پهن نکرده بودین. حالا من نمیدونم چی باعث ناراحتی شد ولی هرچی که بود همینقدر که زود عقلت رسید جای شکر داره. من به مادرت هم گفتم. حالا محمد مرغ آسمونی هم که بوده وقتی به دلت نیفتاده همین بهتر که حالا گفتی نه و تموم شد و رفت. چون مادر هرچی به دل قشنگ باشه به چشم هم قشنگه. هرچی هم که به دل آدم نباشه هور و پری هم که باشه باز پیش چشم آدم بی ارزش می و یه ای داره. بیچار اکرم خانم نمیدانست و خبر نداشت که همه درد من از همین است که آنچه از دست دادم به دلم خوب که هیچ بهتر از بهترین ها بود و نقشی که بر دلم حک شده بود از جلوی چشم هایم کنار نمی رفت.